به نام خدای یگانه‌ی مهربان سلام افسانه ها روایت های ساده از زندگی عقاید و های مردم عامیان که مستقیم و غیر مستقیم متأثر از اسطوره یک قوم و به صورت شفاهی حفظ و زبد شدند به سرزمین ترکیه میریم و از گنجینه افسانه های این سرزمین افسانه ای رو براتون نقل میکنم تحت عنوان چه بودم، چه هستم و چه خواهم بود. این افسانه برگرفته از کتاب داستان و افسانه های ترکیه جلد دومی که خانم مارگریت کند از زبان ترکی به انگلیسی ترجمه کرده و ترجمه فارسی اونو خانم شنگدخت رئیس‌زاده در او داشته. افسانه چه بودم چه هستم و چه خواهم بود را از سرزمین ترکیه بشنید؟ در زمان‌های قدیم در سرزمین ترکیه پادشاهی بود که فرزندی نداشت و از این بابت خیلی رنج می‌برد. سرانجام روزی همسرش دختری به دنیا آورد و تمام غم و های پادشاه به پایان رسید. پادشاه علاقه زیادی به دخترش داشت و تمام وقتش رو صرف شاهزاده خانم کوچولو می‌کرد. روزها میگذشت و دختر روز به روز بزرگ و بزرگتر می‌شد. اما افسوس همونطوری که بزرگ می شد زخمهای امیقی روی پوست بدنش ظاهر می پادشاه و ملکه از این وضع خیلی ناراحت و نگران بودند. اونا هر حکیم و طبیبی که در سرزمین ترکیه بود برای که مداوای دخترشون به قصد را ولی اونا هرچی سعی می کردن نمی تونستن زخمهای شاهزاد خانم رو شفا بدن پادشاه که از درمان و معالجه که زخمهای مرموز شاهزاده خانم زیبا نومید شده بود دستور داد که همیشه بدن پر از زخم شاهزاده خانم رو با لباسهای زربفت و جواهر نشان بپوشونن تا زخمهای بدنش از چشم دیگران مخفی بمونه اما با وجود این تمام مردم شهر داستان زندگی دردناک شاهزاده خانم رو می و به حالش افسوس می خود. گوزه تا اینکه روزی زن جادوگری که تازه وارد شهر شده بود داستان زندگی شاهزاده خانم رو شنید اون فوراً کیسه برداشت و بعد از اینکه اونو پر از اشیاء بیمصرف کرد به طرف قصر پادشاه برافتاد افتاد و وقتی به نزدیکی اونجا رسید در حالی که دوروبر قصر میچرخید فریاد زنان گفت آهای روغن شفا دارم روغن علاج بیماری دارم این روغن شفای تمام بیماری هاست روغن، روغن علاج بیماری دارم شاهزاده خانم که در باغ قصر در حال قدم زدن بود صدای زن رو شنید و فورا دستور داد زن رو به داخل قصر را برده و به نزد پدرش شنی پادشاه ببرد پادشاه با دیدن زن نگاهی به پر پرمون انداخت و گفت ای زن اگه تو بتونی زخمای دخترم رو درمون کنی پاداش گرانبهایی به تو میدم میتونی این کار رو بکنی؟ زن جادوگر نگاهی به دختر که سرطاپای خودش رو با لباسهای زربفت و جواهر پوشونده بود انداخت و گفت من در صورتی دخترتون رو معالجه میکنم که هر کاری که گفتم بدون قید و شرط انجام بدین و هیچ کونه سآلیم از من نکنین قبوله؟ به بعد یه چشمای پادشاه خیره شد پادشاه به گفت گفت: قبوله قبوله فقط دخترم رو معالجه کن زن زن جادوگر دوباره نگاهی به شاهزاده خانم که در گوشه ایستاده بود انداخت و گفت یکی از اتاقای غسل رو برای من و شاهزاده خانم حاضر کنید به جز من و شاهزاده خانم هیچ کس حق نداره اون بشه من در عرض دو روز با داروهای مخصوصی که دارم زخمای بدن شاهزاده خانم رو درمون می کنم. و از صبح روز سوم دیگه هیچ اثری از اون زخمه باقی نمیمونه شاهزاده خانم با خوشحالی به طرف پدرش رفت و گفت پدر، پدر اون واقعا من معالجه میکنه خدایا یعنی من خوب میشم؟ پادشاه دستی از سر نوازش بر سر دخترش کشید و با خوشحالی گفت البته دخترم، البته به بعد دستور داد فورا اتاقی رو برای زن جادوگر و شاهزاده خانم آماده کنن زن جادوگر و شاهزاده خانم که تنها شدند زن جادوگر روغنی رو از داخل کیسش بیرون آورد و به روی زخمهای شاهزاده خانم مالید شب که شد و شاهزاده خانم به خواب رفت زن جادوگر قیچی کوچیکی از کیسش بیرون آورد و شروع کرد به چیدن و قیچی کردن لباسهای زربفت شاهزاده خانم و بعد اونا رو توی کیسش پنهون کرد بالاخره وقتی دو روز مهلت به پایان رسید قبل از اینکه صبح بشه زن جادوگر که حالا دیگه کیسهش رو پر از تکه های زربفت و جواهر نشان لباس شاهزاده کرده بود دختر بیچاره رو از پنجره اتاق به بیرون پرد کرد و خودش هم به سرعت از اونجا دور شد صبح که شد تمام نوکرها و کنیزهای قصر که از خواب بیدار شدن با نهایت تعجب دیدن که در اتاق شاهزاده خانم که ورود به اون ممنوع بود نیمه بازه و وقتی با کنجکاوی و تعجب واردون شدن متوجه شدن بله نه خبری از زن جادوگره و نه خبری از شاهزاده بر ناپدید شدن زن جادوگر و شاهزاده خانم به گوش پادشاه و ملکه که رسید ملکه از شدت ناراحتی از هوش رفت و پادشاه سراسیمه به این طرف و اون طرف قصر میرفت و فریاد میزد زود باشین دخترم رو پیدا کاین زود زود باشین تمام نگهبانان قصر نوکرها و کنیزها به تکاپو و جستجو افتادن ولی هرچی گشتن اثری از شاهزاده خانم پیدا نکردن ملکی که به هوش اومد عشقریزان به پادشاه گفت: تو نباید به اون زن اعتماد میکردی. حالا چه خاکی به سرمون برسیم اگه دخترمون رو پیدا نکنیم اون وقت اون وقت. و گریه امانش رو باریم پادشاه دوباره بر سر اهالی غز فریاد زد گفتم هر چه زودتر دخترم رو پیدا کنید هر چه زودتر و باز هم تمام آری قصر به تکاپو افتادند اونا تمام قصر رو جستجو کردند اما باز هم اثری از شاهزاده خانم ندیدند اما بشنوید از شاهزاده خانم بعد شاهزاده خانم که زن جادوگر اون رو به بیرون پنجره پرت کرده بود با زحمت زیاد تونست از جا بلند شه اما هرچی این طرف و اون طرف گشت نتونست دروازه قصر پدرش رو پیدا کنه و بالاخره راه جاده‌ای رو در پیش گرفت و رفت و رفت تا اینکه آفتاب غروب کرد شاهزاده خانم از شدت ضعف و تشنگی بر زمین افتاد و یک ساعت بعد از جا بلند شد و باز هم رفت و رفت تا به چشمه آبی رسید بعد از اینکه مقداری آب نوشید دست و صورتش رو تو چشمه شست و با تعجب دید که ای زخمای صورت و دستاش التیام پیدا کرد بعد با خوشحالی و ناباوری گفت خدایا خدایا زخمم زخمم دست و صورتم دیگه زخمی ندارن و با سرعت تمام بدنش رو توی آب چشمش رو سشو داد و دید که تمام زخم‌های بدنش شروع به خوب شدن کردند. در این وقت بود که فهمید به چشمه آب حیات رسیده. شاهزاده خانم با خوشحالی صورت بدون زخمش رو توی آب چشمه تماشا کرد و زیر لب خدا رو شکر کرد. خدایا، متشکرم متشکرم خدایا. شاهزاده خانم به راه افتاد بعد از مدتی که رفت به که رسید که پیرمردی در اونجا مشغول کار بود شاهزاده خانم با قدمهای کند و لرزان به پیرمرد نزدیک شد و گفت پدر جان ممکنه به من پناه بدی من کسی رو ندارم پیرمرد که است که دلش به حال شاهزاده خانم جوان سوخته بود با مهربانی به شاهزاده خانم گفت بیا بیا دختر جان، من تو رو به فرزند خوندگی خودم قبول میکنم معلومی که یه روز خانواده با اصالتی داشتی. دختر تمام ماجرای زندگیشو برای پیرمرد تعریف کرد و پیرمرد شاهزاده خانم رو به همراه خودش به خونش برد. همسر پیرمرد هم که زن مهربان و خوشقلبی بود، با خوشرویی از شاهزاده خانم استقبال و پذیرایی کرد. از غذا این مرد و زن صاحب پسری بودند که خیلی دلشون میخواست همسر خوبی براش پیدا کنند بنابراین وقتی شاهزاده خانم به خونه اون اومد خیلی از رفتار و نجابت اون خوششون اومد و تصمیم گرفتن شاهزاده خانم رو به عقد پسرشون درگیرن. خلاصه شاهزاده خانم و پسر زندگی ای رو شروع کرد. سال از عروسی شاهزاده خانم گذشت، تا اینکه شاهزاده خانم نوزادی رو به دنیا آورد و وقتی خواستم برای این بچه اسم انتخاب کنن شاهزاد خانم گفت خواهش میکنم اجازه بدید اسم بچه رو من انتخاب کنم اهل خونه قبول کردن و شاهزاده خانم اسم بچه رو چه بودم گذاشت یک سال بعد که بچه دوم به دنیا اومد باز هم شاهزاده خانم اسم بچه رو انتخاب کرد و گذاشت چه هستم و بالاخره بعد از چند سال وقتی پسر سوم شاهزاده خانم به دنیا اومد شاهزاده خانم اسم بچه رو انتخاب کرد و گذاشت چه خواهم سالها گذشت تا اینکه یه روز وقتی این سه پسر که حالا دیگه تقریبا پسرهای بزرگی شده بودن و همراه پدر و مادر بزرگشون در مزرعه مشغول کار بودن و مادرشون یعنی شاهزاده خانم هم در کنار مزرعه در حال پختن غذا بود دو نفر مسافر غریبه به مزرعه نسید شدن در این موقع پیرمرد و نوههاش با خوشرویی به اونها خوشامد گفتن و اونا رو برای صرف غذا دعوت کرد دو مسافر قریبه وقتی از اسب پیاده شدند و به شاهزاده خانم نزدیک شدند رخ از رخصار شاهزاد خانم پرید و قلبش از شدت حیجان و ناباوری به تپش افتاد بله شاهزاده خانم با ناباوری دید که اون دو نفر مسافر غریبه پدرش یعنی پادشاه و ندیمه قدیمی و پیرشان شاهزاد خانم خونسردی خودش رو حفظ کرد و با خوشرویی به پذیرایی از اونها پرداخت بعد از اینکه نهار تموم شد خانم رو به پسر اولش یعنی چه بودم کرد و گفت چه بودم پسرم اون چای رو برای مهمونا ببر بعد از مدتی پسر دوم خودش رو یعنی چه هستم رو صدا زد و گفت چه هستم پسرم بیا این لیواها رو بذار جلوی مهمونا و بالاخره رو کرد به پسر سوم یعنی چه خواهم بود و گفت چه خواهم بود؟ پسرم اون فنجونای چایی رو جمع کن بیار پادشاه از شنیدن اسمای پسرها سخت متعجب شد و آهسته به ندیمه پیر گفت خیلی عجیبه در تمام مدت سلطنتم هرگز چنین این اسمای عچی و قریبی نشنیده بودم ندیمه پیر سریع داد و تایید کنان گفت بله منم هم در تمام مدت عمرم چنین اسمهایی رو نشنیده بودم پادشاه نگاهی به پسرها که در مزرعه مشغول کار بودن انداخت و به پیرمرد گفت پدر جان این پسرها نوههای تو هستند پیرمرد با غرور پاسخ داد بله بله اونا نوههای من هستند پادشاه مکسی کرده پرسید ممکنه بگید این اسمی عجیب و قریب رو چه کسی روی اونا گذشته؟ پیرمرد وقتی این سوال رو شنید شروع کرد به تعریف ماجرای دختر یعنی عروسش که همون شاهزاده خانم باشه و آخر سر هم گفت بله موقعی که این بچه ها به دنیا اومدن اون خودش اسم بچه ها رو انتخاب کرد در این موقع پادشاه که خیلی کنچکاف شده بود رو به مادر بچه ها یعنی شاهزاده خانم کرد و پرسید دختر جان چرا این اسمای عجیب و غریب رو روی پسرات گذاشتی شاهزاده که دیگه تحمل پنهان کردن احساساتش رو نداشت با چشمانی اشبار تمام ماجرای زندگیشو برای پادشاه یعنی پدرش تعریف کرد پادشاه که فهمید این زن همون دختر گمشده خودشه از فرط خوشحالی به گری افتاد و شاهزاده خانم و نواهاش رو در آغوش گرفت بعد همگی اونها رو با خودش به قصرش برد و اونها در شهر و در قصر زیبای پادشاه پیر زندگی خوشی رو شروع کرد. چه بودم چه هستم چه خواهم این عنوان افسانه ای از ترکیه بود که براتون نقل افسانهها ها و داستان های ملل آینه روح و در واقع نماینده اندیشه و بخش پرارزشی از فرهنگ عمومی و ادبیات اونها هستند. امیدواریم با نقل این مجموع افسانهها، ها قدمی هرچند کوتاه در راه زبط و حفظ و پاسداشت گنجینه ارزشمند افسانهها ها برداریم و این منبع غنی و پرمای مورد توجه و استفاده دوستاران ادب و فرهنگ ملل جهان باقی بشه. این بررمه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالفور، ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی سدابردار حامد کریمی تغییرکننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدر